بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد أزن شانوية خيامات جنة دعسة هي بخاري ومداز أنس رضي الله عنه كالصلاة صلى الله عليه وسلم إفارميان إن من أشرات الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب يشرب الخمر ويبعر الزنا که مورد اینجا رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد میکنن اولیش برداشته شدن علم علم برداشته میشه منظور علم شرعیه نه علم دنیا علم شرعیه از علم قرآن و سنت برداشته میشه تا جایی که ما در حدیث حزیفه داریم زمانه به جایی میرسد که مردم دیگه جز کلمه لا اله الا الله چیز دیگه نمیدونه یدرسو الاسلام كما يدرس یدرسو الثوب حتی لا یدراما صیام ولا صلاه ولا نسوک ولا صدقه جایی میرسی که مردم دیگه نمیدون روزی چیه نماز چیه حد چیه صدقه چیه زکات چیه ولی یسر علی کتاب الله فی لیل فلا يبقى فی الارض منه آیه. یک شبانه شبانه قرآن برداشته میشه و یک آیا از اونم نمیمونه که دیگه بعد از اون قیامت بر اونها برپا میشه ما قبلنم این حدیث بششاره کردیم و گفتیم که رسولان صلی اللہ علیه و سلم می این الله لا ینتزعو هذا العلم علم و انتزاع اینما ینتزعو به قبل علماء علم همینطوری برداشته نمیشه علم و قبض علماء هست اگر طلاب علم دنبال این نواشن که عالم بشن همه میخوان تکنیسیان و مهندس و دکتر و پزشک بشن اگر قرار باشه همه بچستن به دنیا همه بچستن به تجارت و کار و علم؟ علم همینطوری که برداشته نمیشه زهد مردم دوری مردم از کسب علم از اسباب شدن قیامت همینطور اگر قرار باشه ادامه پیدا بکنه مردم اهمیت باشن نسبت به علم دیگه روزی میرست کسی نمیدونه که این معنی این آیه چیه اون حدیث چیه همونطور کلام میبینیم کسیان ایومدن اجتهاد کردن و میکنن و برای خودشون اتباع و برای خودشون تروری دارد کسانی که مثلا میگن نماز کی گفته که باید بشینیم رو به قبله و وضو بگیریم و چند رکعت نماز بخونیم نه با همون اذ میشه عبادت و خدا رو کرد. فکر نکنید من از خیال با تو صحبت میکنم با این چه نمی آدمایی چند سال قبل توی تهران بحثم شد از این کسانی که به قول معروف متاثر به فلسفه یونان و فلسفه شده بودند و عبادت رو یه چیز زشتی میدونستان که این بردگی هست این عبودیت خداوند اینطوری نیست که انسان زندونی افکار یک شخص باشه زندونی احادیث بشه الا بیاد وزو بگیره و رو به مهم بیاد خدا بودنه تو بهره خدا رفتنه الا میخواد با تار باشه و با نی باشه یا میخواد با هر چی دیگه باشه این جهله این جهل نسبت به شریعت و نمازی که خداوند دربارش میگه یعنی ان تنها عن و والمنکر این نماز نماز این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد داده به اصحابش و فرمود صلو کما رایتمنی یصلی نماز رو خونین چلن چه من نماز میکنم کنم صحابی اشتباه میکنه توی نماز میگه بیام حدیث مصی صلات صلاتاتی که یاتون هست کسی که توی اشتباهش نماز میکرد بدون نمازش اشتباه میکرد بلند شد نماز گفت بیا نمازت اصلاح کن بار دوم بازم همینطور بار سومم همینطور گفت که یا رسول الله یادم بده مشکل کجاست چرا رسول الله بره به معراج و در آسمان هفتم اونجا که جبرئیلم نتونه بیاد اونجا نماز تشریح میشه میگه نماز فقط دا بود اگه دا بود یا مجرد یاد خدا بود چرا این همه احادیث و این همه آیات و این همه هرکان و واجبات نسبت بهش داده شده این جهل این جهل نسبت به حقیقت اسلامه که اگر ماها اهمیت به علم شرقی ندیم خود به خود این علم و این فقه و این فن موین دارک از میون ما برداشته میشه. بن ينتزع هذا القران من بين اذهركم. قرآن از میون شما برداشته می شود. قلت يا عبد الرحمن شداد بن عقل میگه عبدالله عبد الله بن مسعود يا عبد الرحمن كيف ينتزع وقد اثبتناه في صدورنا واثبتناه في مصاحفنا در قلبمون حفظش کردی ثم صاحف قال يصر عليه في ليلة فلا يبقى في قلب عبد منه ولا مصحف منه شيء. فخد يكش. در اون شب خداوند كريم يكون كه اون قرآن از قلبها بعد مصاحف برداشته بشه و يصبح الناس فقراء قلبها. ماردن بيشن مثل هيونات. بعد این آي رم يخون ابو مسعود. ولا انشاءنا لندهبن بالذي اوحينا اليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلة. خدا با خد برش همین حدیث رمادرین این عبدالرزاق عبدالرزاق و ابن حجر هم سندش از جمله احادیث مسلم قال كيف انتم اذا نزل فيكم ابن مريم فامكم منكم راوی قلت لابن ابيبه ان الاوزاعی حدثنا تاخر من جهه امامكم منكم در روایت دیگه امامكم منكم ابن ابي میگن میدونیم معنای این حدیث چیه چطور هستی شما اون روزی که ابن مریم عیسی ابن میاد از آسمان قلت تخبرنی بهم قال فامكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنه نبيكم يعني روزی که عیسی السلام میاد به قران و سنت رسول الله صلی الله عليه و حکم میکنه و این دو که الان چه در حدیث رسول الله که لن يتفرق حتى يرد علي الحوض قران وسنت از هام جدا نمیشن تا من وارد بشن در حوز مسلمانا وارد حوض رسول الله بشن قران و سنت همون طور که قران حفظ شده به نص این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم سنتام تا روز قیامت حفظ شد اگر در قرآن دارین ان نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون در سنتام داریم که همراه قران سنتم حفظ میشه و یک مسئله مهم اعتقادی هست و اونم این که قرآن بدون تبیین رسول معنا نداره مثلا خداوند در قرآن میگه و اقیم السلاح نماز بخونیم خب نماز چطور بخونیم خداوند در قرآن میگه و انزلنا ایلیک الذکر لتبین للناس ما نزل ایلیهم ذکر این قرآن رو نازل کردیم تا برای مردم تبیینش بکنی، واضحش بکنی. یک سری چیزها هست ما نمیدونیم نمیدونستیم نماز چیه زکات چیه روزه چیه ارکانش واجباتش روزه رو که شروع بکنیم تا که شروع نکنیم معنای صحیحش چیه حتی برای صحابه هم مشکل شد پس نیازه که رسول خدا بیاد تبیم بکنه و بیاد اون آیات رو برامو واضح بسازه بدون سنت رسول صلی الله علیه وسلم ما تو دین خودمون میمونیم. یعنی قرآن نمیتونیم بهش عمل بکنیم. بحث علم، بحث مقل معروف اینکه علم برداشته میشه قبلا زیادی رامونش صحبت کردیم ولی خیلی اینجا چون اومده بود بازا من دوباره تکرار کردم. قال من اشرات الساع ان یلقل در روایتی در يذهب العلم و الجهل، جهل زیاد میشه و يظهر الزنا و تکثر النساء ويقتلوا الرجال حتى يكون ل50 امراه القيم الواحد من حديث بخاري روایت کرده همون مثل حدیث قبلی هست ولی که چند تا چیز اضافه داره علم زیاد میشه جهل زیاد علم کم میشه جهل زیاد میشه و یظهر الزنا زنا زیاد میشه که در حدیث قبلی هم ما داشتیم در اون حدیث داشتیم مشروب خوری زیاد میشه حالا بحث مشروب هم بهش خواهیم پرداخت و يظهر الزنا وتكثر النساء زنا زياد مشان ويقتل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد بريب عن جهزان يقيم مشان يقمسوا المشان فدر رواية در صحيح مسلم دارين إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم يرفع العلم وينهر الجهل ويفش الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد فدر حديث ابن مسلود دارين تبرانی بین ایدی سه ها یظهر الربا والزنا والخمره بین شما و قیامت ربا زیاد میشه از نشان های قیامت زیاد شدن الربا هست و همچنین زنا زنا زیاد میشه از که ما در صحیحین داریم حدیث دا ابو مالک اشعری هست که امام بخاری با سند ثابت نقل میکنه با سند متصل نه که بعضی ها میگن لا یکونن من امتی اقوام یستحلون خره وال حریرهخمر والمعازف مععاظف از او متماکسسان هستن که حر زنا حلال میکنن نامشو چیز دیگه میذارن وال حری پاشه ابریشم والخمر و مشروع وال و در روات مده یسممونها به اسمها اسم این چیزها را عوض میکنن و اسم چیز دیگه میذارن و همچنین ادات موسیقی آهنگ، بعد الرسول الله صلی الله علیه و سلم چنین یاد جنب يروح عليهم لهم یعنی الفقیر لحاجه فیقولون ارجع الینا غذا فیویتههم الله یذع العالم ويمسك آخرين قرده وخنازیر الى يوم القيامة، یاد میکنه رسول نشانه قیامت کسانی کنار کوه و ادهی از اونها رو خداوند تبدیل به خوک و میمون میکنه و بخ... عقوبت اقلیه بر اونها نازل میکنه بخاطر استحلال این محرمات یا استحلون بخاطر حلال شمردن مشروب، حلال شمردن زنا و همچنین پارچه ابریشم عبری همچنین عدبات موسیقی و آهن در داریم درم دست مسلم بازم والذی نفس بیاده لا تفن هذه الامه حتّى يقوم الرجل الى المرأة فيفترشها في الطريق فيكون خيارهم يومئذ من يقول لو رايتها ورأى هذا الحال میگه تو جی زمانه امام رسول الله صلی الله علیه وسلّم ک شخص علیا زنا میشه آیا شما بشن نویل کسانی که شاید تعامل با بازار دارن شخص میاد افتخار میکنه من زنا کردم با فلان دختر و فلان دختر میگه با تخ اون شخص اون اشخاص بهترینشون کسی که میگه وقتی زنا رو میبینه میگه برو پشت دیوار حداقا میخوای کاری انجام بده برو پشت دیوار حالا پیش،, پیش خودمون نیست اینطوری یک از دوستانمون توی مدینه بودیم ناراحت بود که پدر و مادرم اصرار دارم برم کانادا آفریقایی بود خودش گفتم خب چرا نمیخوای بری کانادا گفت که یک بار رفتم همون یک بار کافی بود گفتم چی بود مگه گفت که زنا علنه توی آمریکا تو کانادا مثل هیون توی کوچه خیابان میگه من اگر توی خونه ها بود یک مسئله میگه شب که میمدم از مسجد توی کوچه این قضیه رو دیدم خب این نهایت پستی انسانه نهایت حیوان بودن انسانه حیو چیز در هست تو یک مؤمن شر بکنه حیات داشته باشه و نصوص شریعت زیاد اون نصوصی که ما رو برحذر میشموره از اینکه که نزیک زنا باشیم بودا تقرب زنا نه که زنا فقط تنها نک بلکه خدا میگه نزدیک زنا نشید نزدیک زنا نشید با چی لا يدخل کم على النساء لا يخلون احدكم من امراه کسی خلوت نکنه کسی با ننشینه از مردها خوشو بش بکنه با زنا با زنا اخلاق ناپسنده یا خدا من به زنا من میکنه به حالت تبرج الجاهلية تبرج جاهلیت تبرج جهلियत نکنی یا خدا من در قرآن میگه الا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرد مرض, مرض مرضی که در قلب مردها تحریک میشن فلا تخبرب اقول کوزور در قول نکنید خوش بش نکنید بانا محرم. این همه نزدیک شدن به زننا هست نبا نزدیک بشید با دختترنا محرم صحبت بکنید. با اون دختره بیاد و پسرم ما محرم صحبت بکنه. ان العين تزدی و زننا النظر و سمع تزنی و زننا سمع چش ذنا میکنه؟ زناش دیدنه چرا قو بر؟ در قرآن بهش دستور داده شدیم چشم از نامحرم بکشونیم نگاه نامحرم نکنیم هم به زنش هم به مردش چون چشم زنا میکنه و زنا ها و الادون و تزدی و زنا ها سمع و گوش زنا میکنه و القلب و یا که و یشتهی قلبم تمنی میکنه شهوت میل میکنه تو زهنش تجسم میکنه و هزار چیز به ذهن خودش میاره هزار برنامه داره خودش و حدیث نفس همینطور بووش بر کنه بره ادامه بده با این حدیث نفسش صاحب بشه که وارد حرام بشه استمنا بکنه نمیدونم نسبت به نماز و طاعت و عبادتش کسالت به خرج بده بی اهمیت بده بشه اینا همه مداخله شیطانه وقتی خدا میگه ولی تتبعوا خطوات الشيطان وقتی خدا میگه از زبان ابلیس میگه ملعقوینهم اغو میکنم فریب میدم فریب شیطان فکرت نگه چیه ما در برای شیطان باز گذاشتیم اون دختر در برای شیطان باز گذاشته چرا با صلی الله علیه و وسلم میفرمایند زنی اگر عطر بزند برد مسجد نمازش قبول نیست تا اینکه غسل خودش رو انجام بده حدیث در صحیحه کی میخواد این کارش بکنه چرا به خودمون بگیم چرا بر اون زن زنا نوشته میشه علت چیه جزئی که اگر مرد نامحرم از کنارش عبور بکنه این هوس در ذهنش تحریک بشه تحریک در وجودش ایجاد بشه غیر از اینه نه غیر از این نیست میاد انشاءالله از نشانه های قیامت رسول الله صلی علیه و وسلم یاد میکنن اون چیزهایی که در زمان جاهلیت بود در قمت اسلام هم زنده میشه اون زنان متبرج که خودشون رو زیبا میکردن از بدن خودشون اونجایی که حرام عورت آشکار میکردن حتی برهنه میمونن تواف میکردن خب اینا همه شهر اومد باش مبارزه کرد مگر نگف یدنین علیهن من جلبی بهن خطاب میکنه به امهات المؤمنین که امهات المؤمنین از باب اولا دیگر زنان چادر رو بکوشن از فرق سرشون بیاد پایین تا پاهاشون کشیده بشه مگر ندارین اینکه پاهای زن عورده چرا؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید این زنان متبرج می خدا می ولا تبرج جاهلیت اوله انتبر الجاهلیه اولیا چیه تبرج همون زینتیه که بر سر و صورت خود میکشن غیر از اینه مگه غیر از اینی که با بدترین حجاب میان بیرون با با زننده در این لباس ها میان بیرون که چشم ها رو به طرف خودشون جذب کنن خب این چیه این زنا پای مرد بشه و اون مرد وظیفه داره خود به بکنه درست وظیفش هست ولی کن هست است دره های رسول الله صلی الله علیه و آله فرمایلی آمده هستند که آنان ملعونات، اگر کسی با سند صحیح میگه این زنان ملعونه ولی انسان براش راحت شده چون ایمان ضعیفه، چون تقوا نیست، چون علم نیست، کسی نگفته سبب شده راحت این کارها رو انجام بدن. وقتی که این درها بازگذاشته شد شود، خطوات شیطان و درهای شیطان باز شد خود به ما خود ماها فریب فریب به شیطان می‌خوریم، فریب به هوس خودمون می‌خوریم. مواظب خودمون باشی وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند زناسیات میشه علتش جهله علتش بی علمیه علتش بی تقویه علم نشه ال نیات تقوا نمیاد به خاطر همین امام بخاری میگه باب ما جاء فی العلم قبل القول و العمل علم قبل از قول و عمل بعد میاد میگه بقال الله تعالى فعلم انه لا اله الا الله بدان که خداوند معبود به جزء و معبود به نیست فعلم اول علم بعد قول و بعد عمل علم علم که برداشته شد جهل که زیاد شد بی تقویی میاد در پی آن درهای فحشا و منکر و اینها زیاد میشه و ما باید باش دست پنجه نر بکنیم و گفتم همونطور که جلسه گذشته گفتیم اگر ما نگیم اگر ما امر معروفن از منکر نکنیم و نگیم ما همونطور که یهود ملعون شدن لُعْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا من بَنِي اسرائيل على لِسَانِ داوود برای كانوا لا يتنهون عن منكر النهي از منكر نميكردن ما در از منکر نکونیم ما هم مل مشیم و این از نشانه های قیامت همین دست کشیدن از امر معروف از انسان نگه انسان چرا اللہ اللہ شد مگر این بود که منکرات زیاد شده بود برای اینه و علم ما هم برای همینه برای اصلاح برای اینکه ما بشیم نهی از منکر بکنیم و امر معروف بکنیم اینجا هم اگر ما نشستی من بخاطر همین جز این نیست جز علم نیست جز مدارسه علم چیزی دیگری نیست پس زنا زیاد میشه زنا هم زیاد میشن، جهلم زیاد میشه و رباخاری زیاد میشه چیزهای دیگه هست الله در جلسات بعد بهش اشخواهیم پرداختون صلی الله علی محمد و علی محمد